سلام من محمد خلیقی هستم یکی از شاگردان آقای رافع آدم الحاشمی میخواستم تشکر کنم از تمام زحماتی که آقای رافع واسه من کشیدن یکی از بهترین استادهایی بودن که من داشتم ایشون خیلی کمک کردن در زبان عربی و یادگیری زبان عراقی ایشون به من کمک کردن که این زبان شیرینو خیلی سریع خوب یاد بگیرم و یکی از بهترین استادهایی هستند که من داشتم با تمام فایلا و کتابهایی که در اختیار من گذاشتن در یادگیری این زبان به من خیلی کمک کردند و ازشون از صمیم قدب متشکرم بابت زحماتی که واسه من کشیدن همچنین به همه زبان آموزان و کسایی که میخوان به زبان عربی تصدت پیدا کنن مخصوصا عراقی توصیه میکنم که حتماً با آقای رافا آدمال هاشمی کلاس داشته باشن و از خدمات و کلاس ایشون بهره ببرن چون که یکی از بهترین و عالیترین استادایی که من تا حالا داشتم هستن خیلی از ایشون متشکلم چون که به من خیلی راحت و خیلی آسوده و خیلی زیبا این زبان شیرینو یاد دادن و واقعا از کلاسها و ویدیوهای آموزشی کتاب و لغاتی که در اختیار من گذاشتن و تمام زحماتی که ایشون واسه من کشیدن سپاس گذارم. خدا نگهدار